تا خاک مرا به غالبا میخته اند، بس فتنه که از خاک برانگیفتهاند من بهتر از این نمیتوانم بودن که از بوته مرا چنین برون ریختهاند آنها که کشنده نبید نابند و آنها که به شب مدام در مهرابند، برخوش یکی نیست همه در آبند، بیدار یکیست دیگران در خوابند. از آب عدم تخمه مرا کاشتهاند از آتش غم روح من افراشتند، سرگشته چو باد دم به دم گرد جهان تا خاک من رجای برداشتند. چون نیست در این زمانه سودی خرد جز بیخرد از زمانه برمی نخورد، پیش آورزان که او خرد را ببرد، بو که زمانه سوی ما برنگرد.